اکبر در حالی که تمرکز کرده دستاش رو جلوی خودش گرفته و سعی داره که دوچرخه رو بلند کنه که این کار رو انجام بابات همسرش وارد میشه تمرکزش رو به هم میزنه و باعث افتادن دوچرخه میشه اکبر سعی زن چرا نمیری سر کار این بازی ها رو در نیا؟ الان باید می اومدی وسط. برو سر کار. دارم میرم دیگه. چرا منو واقعا نکن؟ قبول نرم اما این کار مسخر بازیه دیگه. آه. آه. ما به خدا ش... بولان شو. من واقعی بولان شد تو هم لنگه باباتی. مادر مرتضا دمپایی رو بر میداره و به سمت محسن پسر کوچیکش پرت میکنه. محسن جا خالی بده. چه کاریه به بچه چیکار داری آخه؟ کردی. این مسخر رو بازی ها رو نکن ببین زندگی منو تباه کردی، زندگی منو سیاه باما. کردی یه روزی بشر رو من نجات میدم دیگه خیلی داری مسخر بازی میکنی جمع کن برو خون سر کاره دیگه به کارات برس. الان گذاشته بودی من یه دانشمن شده بودم رفتی؟ آره دیگه بلن میکنی؟ خداحفظ چیزی نمیخوای؟ نه، دست درده کن مرتضا و دوستش مهران داخل دفتر فیلم ساز نشستن و دارن فیلمی رو که قبلا توی خونه از پدر و مدر و برادر متض گرفتن میبینن بعدش چی میشه؟ چی دیگه؟ پول اون تم شد پدرم فوت کرد یا نتونستم بغلش رو بساززم نه از آنقصس چی میشه بعدش؟ آهان پسر با شددی مرتزه هندی بوده یه چیزهایی یاد گرفته بود ولی کسی باورش نمیشه من که تصمیم گرفت قطار نگه داره ولی هر کاری میکرد جواب نمیداد هرسی یه مثلی از اددمار برش می بری کنار ره آخه قطر میواد از کنارشون رد میشه. یه روز قاطی میکنه میره واسه جلر ریل میگه یا نگه میدارم یا میمیره بازم نمیتونه نگهدار و بچه یتیم میشه. ولی اون کاری که بابا نتونه انجام بده بچه بزرگ میشه انجام میده. با هم نوشینه؟ تهران دست به من کمک میکنه. خل و شماره تو بده منشی بهش میگم بهت زنگ بزن یعنی نه شد آقا؟ بررسی میکنیم میگیم باشه. بریم آقا اگه میشه زره زودتر جواب بدین. چون سرمایه گذار دیگه هست، باید به اونم جواب بدم. ولی خیلی دوست دارم با شما کار کنم. برای همین همین میرم میام. خیلی خوب، زود با تماس بگی. مرسی آقا. مرسی تماس هم شدیم. خدا افس. زمانی که در حال خروجند، دستیار فیلمساز از مرتزا سوالی میپرسه. قتا رو برای چی نگه میداره؟ بله؟ قتا رو برای چی نگه میداره؟ قطار نگم رو فیلمساز و دستیارش به مرتزا زل زدن و منتظر شنیدن جواب هستند. نگم رو بیرون دفتر فیلمساز هم کلاسی مرتزا منتظره تا لباساشو از اونا تحویل بگیره حال به هرکی میرسیم م دستی من عاقا دور ما نخوردن یه روز زعت میکنه این یه روز بیفته دنبالم اعتاس میکنم آشناار کنم اون روز به رو بابام نگاشم نمیکنم کوشید بابا دیرم شد مگه دیون است بیاد دو میلیوم دی تو استاش فیلم میسادی پستر رو دیوارش دیدی اصلا من پستو داره چیه فکری اینا که فیلم میسازنن خیلی بیشتر از به حالیشونونه معلو اون که بیشتر حالیشون بدو بابا بدو. مگه سال به تو نگفتم وقتی میخیری یه جای قبلش برو شوی اینا نه مغز دارن نه هنر فقط پول دارن هیچ چی دیگه ندارن مهرا تو که پولم نداری ببین تو خیلی آدم خوشبختی هستی که لواساتو ما پوشیدی آقا بس برم هستم دیگه فردا ناوردی نکنیدا تا فردا یه جور نکنم مرد نیستم مهرا کارواش محل کار مرتضی مرتضی مشغول تمیز کردن ماشین مشتریه همسر صاحب ماشین داخل ماشین مشغول صحبت با تلفنه سلام دیدید دو جایی سرسده است خریب خریبی همه چرا کردی آره آره با من خواهر سال هرفتم آره ولی خیلی خیلی هم. نه نه من نمیتونم بیان خواهر دارم خواهر بانت اخ، گفتی فیلمساز یا لنگ یه دوروینی آره؟ همه چه فیلمساز بگونه هستم چیشو بگرده بعد دختی، یه دوربین نداشت فیلم بسازه. ولی مهم آخرشه هرم فکر کردم آخرش نرست میشه اصلا نبشه عمو، این کم دیگی؟ کنه؟ سه نفر میماش کارگرنده شده این سه نفر؟ بعد سه نفر اما خود ندارم آقا، درویه پایی یلا با این کنم؟ 일어나 بیا پایی. برو وقت ندارم. یه دقیقه بیا با این. برو ما زهر نشاغا. 일어나 بیا کارم دره. نیه. کافیه آقا رو جون مونده. چی میگی تو؟ درست هنری. مرتضی انگشتر طلایی رو که داخل ماشین پیدا کرده رو روی 500 تومن انعامی که بهش داده میذاره و به صاحب ماشین میده. آقا مسر. آقا مسر. خوب کرده بودا بکرم رفتی مردی که تا یکی دو سال پیش با خر میرفتیم در اون بر حالا تنبونش دوته شده باید میزشتی کف دست زنش آدم شد سمت جونه مادرت دیره آوردش جفرقای دستت خیلی شاکی ها همین روز فرداست که پرتیت کنه بیرون فیلمم که تمام شد صف کار بیا کار سمت کارگر کارواش یه دوربین برای مرتزه آورده. <تصفيق> یه ورسامه ای دیگه پس آها شو منو میشناسه کوچولوش کوچیکه نه گونده دیوونه کریم <تصفيق> ببین این کریم ما اصلا مادرزاد جذاب دنیا اومده دستش هم سنگینه فهم رفتم سر وسایلش دوربینش برداشتم اصلا زندم نمیذاره حالا بگیر اینو از بازار شیطونا گرفته کارش همینه زن اگه چیزی خاصی بده من میدم داش من وسط آبش بکاره این پس فردا پاسورده بلیط برگشتشه. شب نشده بیاریش. پیاله رات. آقا. الانمای روزت هم بده بیا. آسورده. تا در روز والدینا. یه هفته. <وصح> کنار ریل قطار. تعدادی از بچه های مدرسه منتظرن تا مرتضی قطار رو نگه داره. برا آخرین بار میگم. تا آخر برنامه کسی از جاش تکون نمیخوره. پول. این 1000 تومانش کمه. به خدا نداره. فرید زنگ اول بهت میده. هر کدومتون هم گیر بیافتین به خودش مربوطه پور موبیلت هم موبایل موبیل برچی؟ فکر کردی میزنم ازش فیلم میگیری زود رد کا بیاد باش بود فرد اول بیا از هم بگیر موبیلت اینه؟ همینش هم نداریم چی کاف بالا؟ برو او چی کامی کنی؟ همینی که نمیخوای پاشو برو خونتون تو دیگه هستی؟ منه؟ پول تو چی چی؟ پول تو خودت تعالا دیدی؟ مهران به پرنده های توی آسمون اشاره می کنه. اونجا رو ببینین اینم هم فهمینن قرار اتفاقی بیفته. شما خیلی عاده من خوشبختی هستین که الان اینجایم سری پیش عبا شد باید گرفت، توری برای میمد که چش چش نمیدید رای لداشو شاب میبرد، در اختار عجام میکند پرنده ها جیغ میکیشیدن، سگا فرس میکردن موی تنامه سیخ شده بود یکی بچه قسم خورد که دیده نور خورشید که مزیاد شده مرتزا دوربین را رو روی داشبورد ماشین قدیمی کنار ریل میذاره و اونو به سمت محل عبور قطار تنظیم میکنه. مرتزا از ماشین پیاده میشه و به نزدیکی ریل قطار میره. خیلی خب دیگه! مرتزا عمل، پشینین! باشیم. مرتزا روی سنگ بزرگی که کنار ریل قطاره میره و تمرکز میکنه از کجا ولده؟ بابا شاگرده یه مرتزا هندی بوده اینم از بابا شاد گرفته خالی بندیه بابا عمرانوان استه مرتزا دستاشو جلو میاره و با چشمای بسته منتظر عبور قطار تا اونو نگه داره. قطار میرسه و مرتزا به دت در حال تمرکزه. اینا که گوشیش رو مخفی کرده بود شروع به فیلم گرفتن می اتار میسته و بچه ها پا به فرار می زارن مهران و مهران به سمت ماشین میرن تا دوربین رو بردارن اما دوربین افتاده و شکسته بدبخش شدی مهران هم دوربین داغون شد هم اون پرید خب برو پس تو بگو از اولا خراب رو درش شکستی رو خیلی نیست که نفهمه بعدشان ساعت گناه داره من از گفتم به جرشبار نمیرسید. گوش نه علیته. وقتی جایزه جایش رو گرفتم میم سر پروپه بنزین وای میستم. یه دست برات تکون میدم. آن تا آخر رو, رو توزه دل و هواب بفتیشم. در حال برگشت، سوار دوچرخه. همه سر مورا دوچرخه ما باشد. باشد باشد. و مهران وارد پلوت بازی میشه. مرتزا یه دست میزنید؟ یه دست برو بر یه رسول می را خبا، خیار میکن فوتوال لسین چیه؟ اه؟ اصنگاچ خور؟ با بارسه افتی با خور یا ای با راهن بودی ریچکا میکره تو ترگم، یعنی یاد میگو سلام آقا داریش خیافه شو کفشات کن کلاغو برده از این پیچ ها کام شده با این پیداشم اینه از این پیچ ریزه که کجا؟ که را خواله چی پول دارم کنید؟ پول وردم، بیا این پول، اول ببرس بهش بزن قرد مخونی، بیا در؟ خواه، هلی میزنه؟ که همون میخواهم برم، زور لالی از همه اول بگی پول وردی؟ اول ببرس بهش بزن میزنه آه. فقط بیا، این هم به رفیق Darwin Tagesсон، حیمان و کنی؟ اینو میتونه légشب رفت ها انوا إخوار قفع من خطول مهاتوب برای مورسون، اوش نشونم د offsه من المال را وریک releasing رونا غیر از شورتی می نه نه نجاید نیفرن نیترسی؟ به سوال نه ساری؟ ها او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 من داریوش صاحب کلوب از ترس معمورها کرکره رو پایین می کشه و همه رو ساکت راست جونو همونه تا خوردی خورده شرطی نزنی؟ تو چاخه؟ حال می شید یا کنم مرتزا. سلام آقا مرتضی کمی میوه خریده و به خونه میرسه. مرتضی دو چرخشو کنار دیوار میذاره و یه گل سر از روی زمین پیدا میکنه و داخل جیبش میذاره. سلام آقا مرتضی. سلام آقا. حاج خوبه. بیا اینا واسه راه بگذار. بله چاش. فردا دارم میرم به ورس. بیارم. یه یلو چک کن چرخایاتی بادار تعمیرگاه هستین واسش بیار. باشه. خیلیتون. این پولم بده واسه آچخانوم. قول کی کرای این مہینہ کم گونی رو به داخل خونه میبره. محسن برادر مرتزا مشغول بازی و کمک کردن به مادرشه. حالا حاجی این خودا کردن من گلم گدبید، مری گوزی. موجه زردیش میپرسونید. آروم. حالا حاجی این بده، بدهای بابا. بده زز میون. محسن مامان پا بزنینا امانت مردم پاره به میشه ها. هر کسی میان علیک سلام. سلام. اینقدر دی اومده خونه آقا با مهران مییرون بودم ران مامانشه یک شبه بازار دیدم دلشم خون بود در دست پسرش این بنده خدا از او سر دنیا بلند میشم یه یعنی پولی درم بزنم به زخم و اون شو این پسره بلند میشه میره هرچی که پول داره تو این کلوب ها واسه بازیش خرج کنه درست این ها آن گیر داددی یا من اونش شی نه کل اقلط نباش آزار هم کلوپ بشم دیگه نمیره bari çi de var rafı hamili mişin mi hazırlıyorsun pula çiye tuş aga aga dost daşıp labla mı var elimi şey در خانه مرتزا مشغول رویا پردازیه بهترین فیلم جشواره با لنز و سپایه تقدیم می شود به مرتزا سعدی میخوام بالای تشکریم از زحمات مادرت بکنم. بس کاری نکنم مرتضی دوربین رو روی میز میذاره. چه دست؟ این قرض خرابه. مرتضی تو رفتی سراغ کشوی مدارک؟ نه. پس سند موتور واسه چی میخوای؟ کاریش ندارم. کاریش نداره. مرتضی به خدا شیرمو حلالت نمیکنم اگه ببینم چش دنبال اون موتورها فهمیدی؟ یه کاری نکن بذارمش خونه پسرمون. این قدم دنبال سویچ و مدارک نگرد چیزی پیدا نمیکنی من کاری به اون موتور ندارم ولی من قرار نبود با اون موتور رفتش ماشین بگیره چی شد پس اون بند خدا عمر کرد که بخره پس اون پولی که گذاشته و کنار ماشین میگیره چی شد کدوم پول مرتزا. کدوم پول اون واسه خودش یه چیزی میگفت بابا بدبخت بعدم هی میگفت بعد خسته میشد میره پی ارزوی جدید ازش خسته نمیشو میره سراغ من الان میفهمم بابا رو مامان پولی همیتونک این فیلم بسازید بس نیست که درمی کنید نه دیم سری بچه بیستداد میریزن فیلم میسازن میفرسن جاشوره جایزه دوربین میگیرن بعد با اون دوربین هی فیلم میسازن میفرسن جشوره هی جایزه میگرن هی جایزه میگرن شب بخیر مگه شب نبت داداشت این رو تخت بخوابه خودش افته خودش افتاد؟ اما تو بلندش میکرد میزشی شو تخ بیر نه از اینجام مرد مثل تو باشم ما که سوختیم لعنت چی چی نه چی چی نه نکن نه اون نه که سوختیم سوختیم نه صبح. مرتزا از خواب بلند میشه و سر میز صبحونه میره. دیشتر چکان داد. ست تا ستاره در دستم افتاد. بودند آنها بسیار زیبا. موسیم، هزار یه دفعه بهت من بلند بلند شعر نخوند. این سری میزنم ایتا مرتزا یک ایت دانش را hey. دادم به بابا بس تو دو دارد نکرم آن دیگری چی به شربار را نگاه کردی؟ دیجار. چیزی شده میگه چی به شربار را تو میگم دیدی؟ دیجار. چیزی تو چی به شربار مرم ما بارو یه نگاه بنده اصم این چیه مامان؟ پنجاه توان پول دارو آمه. دفترچم رو میزه. برو برش دیگه. پایی <تصفيق> تقویتی داده، اونو نگیر. بگو نمیخوایش. این خیلیه. سی ست توانش به فیلمته دیگه. برو نزه این بچه های بی استعداد جاییزت رو بگیرن. برو ما اینقدر هم قربه من نزم. برو. سمیت گمه خیلی گلی. ارتزا با دو چرخ از خونه بیرون میره و به دارو خونه میرسه. بفرماید خوشش بدید. خانوم یه مرتزا جهت پرداخت هزینه داروها به سمت صندوق بپرم یک و پنجا چقدر؟ یک میلیون و آقا کارتتون نمیکشه تو پول نقض بیادی چه خبره چند زیاد نمیدونم برو از اون طرف بپرس نفر بعدی بپرم آقای داری تو این رو اشتباه چی ببینم اینو. نادیگه یه میلیون تو من آمپوله تا پنجهزار تو من داروهای دیگه. آمین که گفتم آمپول نمیخوام. کی گفته نمیخوام؟ آنها میدیم آمپولش بارد و با. دارواش. اصلا نه لیبیسی نیست. حالی هستش این آمپوله سه خیلی ممنون. بیشتر میتونیم بخونیم. خانم الله که ساعت پنی خانم زودتر میاد. مرتضی به فکر می ره و بعد درباره آمپول از دکتر سعید می پرسد. دو تا مرتضی یه قرف مهار... آطور این آمپولش به تقویتی نیست مبار تقویتی چیه بر فند؟ان <متنق> ف تو تا قرف یه آمپول جلوی کمپ بنزین مهران مشغول فروش دوفنگ حباب سازی وقتیمهارت میمانی خمان نیستره خ چی گیر میدی؟ حتی خودش بهتر میانونه بهتر اونم بهتربی ج اینان که تو درخن کار میکنن دکتر نیستن که یا آش منن سه ما توی کار کرد الان نه آن کل خا هم میان پیشش. برش هم دکتر. اما میخوای؟ شد نه سو تومن. شایی نه نوشته بود دارور دکتر. بره بابا من یه بار دارور اشتوایی نوشته بود. دادش هم فهمید. اصلا میگه وقتی دارو میگیری باید برید پیش دکتر نشون بودید. بیمارستان. مرتزا توی راه رو دنبال دکتر معالج مادرش میکرد. دردان مرتزا به سمت کلاهگیس تلاییی که روی زمین افتاده میره برش میداره و میخواد به صاحبش بده همراه بیماری که صاحب کلاهگیسه اشاره می کنه که کلاهگیس مال خودت مرتزا کلاهگیس رو داخل کلش می و به دنبال دکتر سلام دکتر. سلام این هم بولی که اینجا نمشیم چیه تقلیقیه چی هم من نیدیم خودتونه نشتیم ازترشو بهتون ولد نیستم برای خیلی مهمه اگه نظره شوشه ماری کیه این مامانم. موامله جمالیز منه بهش گفتم که از نظر چه اتفاقی میفته میشه بهش بگی یه مدلی که بفهم تومر موراش رو از ببین میبره دیگه نمیتونه سرپا واسته توی همین لحظه بیماری که روی ویلچر نشسته رو از جلوی مرتضی میبرن و مرتضی شوکه میشه اتوبوس خط واحد مرتزا در حالی که خیلی ناراحت و سرخورده است سر خودش رو به شیشه اتوبوس تکیه داده مدرسه مرتزا مرتزا وارد حیات مدرسه میشه مرتزا مرتزا سینا نه فتار فیلی درفته خالی نه اون ازش میگیره ارتزا به سمت مهران میدوه تا به اون کمک کنه. شکال بیکن شما. شکال هستی دارد بیکن شما. پاشو بیرم، پاشو بیرم، پاشو بیرم، پرکنونه. دو تا همی کنونه. یعنی چی؟ چی خبارتون شما؟ دروغ میگم ما بله باردن. ما بله قطاره نگه میدارم، بچه ها پور ما فیه مگرفته بودم، شما نشون دفتر باشه، دفتر مدیر هر ستاشون رو تنبیه و مجبور به پاک کردن شیشه ها میکنه هفت تو هم میخواه اونم یکی دو روزه جور میکنم از کجم خیلی جور کنه مگه پول فیلم شبیه جور نگردم این یه ملیونه هفت ست تو همه پول فیلمت هم میذارین روش الان پول فیلم یک کاری میکنم آلچر نیمارتوزا اگه دیر جامعی دی بودم الان هم فیلم دیری بود دو دو را بیشتر ندارد. یا بری کلوب بایم پسر سینا شرطی بزنی. بچه مای است. دو سوار بزنی پول درمون. اون که نم. به مانک پولاری. نمیشه. میمون را داغم. چی؟ شیش نفر برده این برده. شستم اجام شد. به نظر چند نفر برده این پولون درمی ها؟ سد نفر هده اقل. نمید هم از کجا بیاریم؟ از کجا ملو بلون ندارد. نمیشه. بله اون نمیشه. ما یه بار قطار رو یه میداریم اونم برای فیلم بیشتر از این میسوزه. راست بیم. این یه توانجونه نکنم مرد نیسته. خانه مرتزا. مادر مرتزا مشغول اتو زدن لباس هست. خب. ماما حالا برم. بارو مامان. الله و مرسل الله و محمد و آلم. ماما بری چی بردشی؟ پسرم. گفتم اونایی که چوروکاشون زیاده سه تا صلوات بفرستیم می خوام حمد بخونم اما من حمدو برای شستن سرت گفتم پسرم لباسام میسوزه سوزه حمد بخونی یه بار دیگه اللهم صل علی محمد اللهم صل علی محمد اللهم صل علی محمد اللهم صل علی محمد مادر مرتضی حالت تعوی گرفته و به سمت دستشویی میره. مرتضی برای گرفتن پول اون پول مادرش پیش کارش میره. می کنی از دست دسبانیه؟ چقدر می خوای؟ یتوم. بیمارس نه؟ نه آقا. ولی داره چه جور اونم خیلی بد میشه. آ کجا بفهمم که راست میگی؟ به خود راست میگم. بعد دوباره بر کار می کنم پولت رو پس میدم. می تو الان دیگه برابر کار کردن تو هم تو یکی یا کاری می‌پیشونی، یا با مشتریات عوام می‌کنی، یا یکی با داستانه چاب و چاخانه دوخه کارگرامون می‌زنی. الان یکی دلیم بیار که نخواه اخراجت کنه. اون مساعده یک ملیونی پیشکشت. آقا، مشکل مادرم اما رو تغییر داده. تغییری که به من نشون بده. مرتزا مشغول کار میشه و شروع به شستن ماشین میکنه. دشتن اه اه ام بقید مرتزا آقا مرتزا فیلم ساز ساخت فیلم تو دارم میسازم بساز دیگه آقا بساز دیگه آقا مرتزا بر نداری دور بینه رو بیاری در خونمون رو بیارش همینجا داشت کریم من هم ببینه من رو میکوشی خیلی دور اونه خوبی یا نیستا بر نفرم دیگه اه. مرتزا جونال بیا ماشین اومده اومده بوشوی یا توشوی آقا بوشوی کفیایی جلوز اینا چیه؟ چه جنگی زده پهنایی رو کپوت واسه گاوداری بابامه تازه است مرتضا مشغول تمیز کردن ماشین میشه زود باش کار داریم بابا مرتضا از برخورد سینا ناراحت میشه و به سمت اون حمله میکن کیرونه از کار باش. و مهران در حال راه رفتن بین درختای بلند هستند. کی نگاهت دو تو چشم سیاهت مثل آهو درشته رحمینه ناری وارن جدا نه. آخر من من با تو چجور کردم؟ هی بان دلم لجبی کنی هی اخ با تو چجمی کنی ایلا مرابت نکن ما رازیت بیا با ما لفاقا اخراج شدی کشدی خدا سرد جفر آقام اخراجت نمیکرد اداره کار میمان میداختن بیرون با رفیقه شما بود چقدر بد گفتم او کار به درد نمیخوره بیا پیش خونم هوا بفروش انا پول تو هوا بود و مهران به ریل قطار میرسند و داخل ماشین قدیمی کنار ریل میشینن. یا؟ این چیه؟ چه؟ سیچلتم میشه. همه رو پرسیدم. نذافتم من تو میخواد. گفتن خواهر کوچیکم مریضه، پول میخواد. تا دلشونو بیشتر بسازه. سعید و کریمو و بهنام دادن، اما حسن و حسین و مصطفی ندادن. حسن بیرامان و اصلا یانم نود باش دعوا کردن. 20 شن پول پولو خودیما. بعد ازت میگیرم. میگم شما فکر فاهمیده چیزی نایارین خونه مرتزا مرتزا مشغول دوم کردن اناره مامان، اناره تو بخوا دیگه تمام دکتر آلمانی میگم برای سرعتان خوبه این دارو میمونه اه، باش شما مامان میخواره مامان، مامان اینو درشته میتونم بزن یه فوتبال ببینم؟ سلام نگاه کن چقدر حرف میزنی؟ دکتتو بنویس؟, بنویس؟ بنویس علی از مزرعه به خانه برگشت مرتزا، ما مدرسه جای کشتیه این چه بزیه؟ پسرم مراقب باش یکم دیگه مادرش در حالی که لباس مرتزا رو میروزه به محسن دیکته میگه مزرعه با کدوموزه؟ بازه دستدار اه. مرتزا وقتی با پاش بینزنه میگه مزرعه با کدوموزه خب من چی بگم؟ خیلی خب، بسه چیم گفتن؟ بسه اه, اه. اه. ماما یکا کن چی موا ما مرتضی محسن ا هزار مره نگفتم کارو نکن بیرون تو آدم در باز کن بچه بیاد تو در باز کن بچه بیاد تو مامان هر شخصی رو دیگه اگه انار رو خورده بودی این هاشو نمیخوردن الیگه بشین این کارو در مامان الیگه بشین بشی؟ غذا میخورم باشه دیگه راجین مرتضی بشین کارو درم دکتر گفتن فقط شما یه ما فقط یه ما انار بخور حالت از منم بهتر میشه از چی می ترسی؟ ای سهر این سرعت شده شدن سام خود دیگه همه دارن همین منم شاید داشته باشه. تو رستوران مامان. چاش، بیای این آنها. من می خورم. مرتزا. من از چیزی ترسیدم؟ کی ترسیدم؟ اما. نه اما من. می اگم اصلا یه آسان درس داره. اصلا ندارد. خواننده و آهنگساز مطرح ارثی موسیقی کشور. پس فوتبال که شروع میشه موسیل موسیل نداشت یه فوتبال شروع شد بادو بادو نداشت کنار ریل قطار مرتزا مشغول نگه داشتن قطاره و مهران در حال فیلم گرفتن از اونه مادر مرتزا در حالی که روی ویلچر نشسته به همراه محسن جلوی قطار ایستاده و قطار میخواد به اونا بزنه که مرتزا از خواب میپره و مادرش رو میبینه که روی زمین افتاده او داره درد میکشه یا حسین یا حسن. هم Ya, ya, Mariza. Ya, ya, Mariza. ya Murtaza, ya Murtaza, ya Murtaza, ya Murtaza. Bunun çiş adı, Murtaza. Çiğ, Murtaza ben de tuhaf. Başı, başı, başı ben de tuhaf. Murtaza'nın Ya Murtaza, Murtaza'nın sakın, arabada Murtaza. kuşa ساکن من می‌دونم. یه لحظه وای سر. یا مرتضو. مرتضو. مرتضو. مرتضو. مساکن منو بدوند دارم مرتضو دیگه نگم من. آش. مامان. دارم سر. وای سر. وای سر. نگیرم. وای سر. وای یه بابا مامانم میسه بیا درست هر مرتضا وارد کلوپ بازی میشه و مهران داخل کلوپ بشه کجایی پس؟ رفته بودم نماری دارم آقانم. بازی کنیم. بازی کنیم. ببریم تا نپیچه فقط گفتی بردم کلوشو پس بینیم حالا اول ببرش بردم پلوشو پس بینیم. یه جوری که پرونش. یه برمیم. بشین دیگه. مرتضا به سمت سینا میره تا باهاش مسابقه شرطی بزنه مامانا که گفتیم همه بزنی؟ ایتو چه؟ دیگه بیمه پورتو بده مورد زوتان یه دست میزیمون تکرار نداره تکرام فیفا پاشو برین موردی جا تیل خب بابا بشی تا سه بشماری تمومی سینا جود بچوان برش بیمه تا سه بشماری نیستی بشماری نه؟ افل از اکوتکتو بخو لا يا زمرتو خلاص بزن خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص بزن خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص اردو کی پوری ہے جسر پر سوتے ہیں۔ مرتضیٰ کت تو نہیں زدی بزن زلف اوہ ہو تو وہ سو رہا تھا یه شام کام ہے سن کاندا سو رووازنی یہ با خود کجا بشی میں مینا دادا بابا سن دو از کلوپ خارج میشن مرتضیٰ تو مدرسه واقیز دیمش اینگہ حالا. مرتضی مرتزا سینار معشنان الان طول ی نمیاد برید در روز بگگذاره گیر مینو واسه انتخام. این سطمون تون میگه داری در روز 1 سطمون تازش در برین بچه مای است بری چند ج ترسا داریوش میین میدی جا کش در پای پاوم بود. چی شد؟ تو رو من میام. یکی از دارو ما ماام میادم رفته بگیرم دوباره؟ خب یه با هم برین دیر میشه بهران بسه می بینمت خدف مرتزا بعد جدا شدن از مهران به کلوپ برمیگرده. مرتزا به سمت در پشتی کلوب میره و داخل اتاق پشتی میشه. همه به مرتزان گاه میکنن و داریش از راه میرسه. درون چی بازه؟ چه خبر اینجا؟ اینجا چی کار می‌کنی؟ منم بازی کنم. خودم کن. هم دی با بازی کنم. برو باید چه بازی کنم؟ آیا بچه‌ام می‌خوام اینجا بازی کنم؟ این منم هم پول اینجا, من با اینجا بازی کنم. اینم پول پوله تو وارد و وارد بیرون ببین. مگه چی آقای روشی اینجا لرن بازی کنم. منم می‌خوام بازی کنم. اینجا بازی می‌کنم؟ میگم بیا بیرون. نمیره. باز مجه کیفه تو برده برو بیرون ممینم نمی ممیرم این چه سنون زار دزن مهمونمون زشت تو بعیده ای. این بچه رو را داده اینجا بابک چیه فدایی چه شد مایه دستش اومده بازی ما کنه مایه چیه باید دزی کار را چیر نکنین بابک آقا دیگه بچیرین این بلوکا دیگه نورم نمیاد برو نمیتین آقا داریوش برو, برو, برو. برو, نمیت آقا داریوش. برو. برو منم با سمد آقا چی نمیدم هم دسته چرا بای صدی بشین؟ چی بازی میکنی؟ همینجا ایجا تایی که پوله تو نمیذاری؟ چرا؟ پوله خوته بچه کجایی؟ کجا شوشو شوشو اینجا رفته بیریم بر نمیگرد خیالتون راحت. خیال من راحتم، میخوام خیال تو راحت بشه. بردا دستت. میشه شما مینه من پولتون میذاریم؟ میذارم. اول بذاریم بعد باز کنیم. چاش. شراکت. صد بیاید بالا. بابای که این پول نمیخوای بدی؟ الان که ندارم ولی زیورش میدونم چقدر؟ سی ست به صبح نه هلی ابازیگاه بیرونم با اخلیت هستم میشهر نمیزن <تصفح> هر موقع آمده رو میدونم به نام خداوازی آغاز میشه هر دی بازی کن بارده رینگ شدن تو مبارزه هر فیلو مشاهده میکنیم چپرده به صورت آواز کنه این زبدارش نمیزنه چه شیشم در وقت پیم پیمه از چپرده این نمیزنه با در یز نمیزنه نه دوست دارم نمی زبدارش نمیزنه دسته آباست هم بچه بودم خجالتی بودم بچه پر رو حال میکنم بچه باید جیگر داشته باشه گوره بابا داریوش این هم دسته هر موقع ما نبودی بریم خب ادامه ی دیدار میبینیم که و بعد به باهون رو بده. ستینگش دستکاری به جایی نمی بره. بیا یه جارو به هوا پرتاب می‌کنه. ستینگش دستکاری شده. بهمان میاره بازیکنه کوچه سالمه. اوه، دستکاری شده. دیر میشه. دستکاری شده. کجا؟ دستکاری شده. بشین تمامش کن. بعد بر. نه دیگه. بابا ما در منتظرم. داریم بازی میکنیم. برچی زده حال میزنیم. بر برم. خونه درس بنا شده. بری. برو. تو هم با من نبودی. عشنه نیست وسطه بازی داری میری. آ. بشین بازی رو تمام کن. بعد برو. نه خیلی ممنون. بد بر. تو برداشتی؟ آره تو باقای پوله تو هست؟ نه ببین کجاست؟ هست؟ کجاست؟ کجا <تصفح> من باید برم بذار پولشو <تصفح> پیدا کنه میری خب باقا اما میگه، باقا اما ما ده ده بدم منتظر این منتظر این منتظر این <تصفح> منتظر پیدا کنه میری ارزا ببینم اینوز یعنی <تصفح> مرتزا با اونا درگیر میشه و پا به فرار هزه و اونا هم به دنبالشون ده مرتزا به ریل قطار میرسه و از اون رد میشه. در همون حال قطار میرسه و دو نفری که دنبال اون بودن پشت قطار جا میمونند و مرتزا فرصت پیدا میکنه که فرار کنه. کنار ریل قطار. مرتزا روی کاپوت ماشین قدیمی دراز کشیده. داخل مدرسه. مرتزا تنبیه شده و مشغول درازون شهست زدنه. حقه تو مرتزا. من میپیچونی. بعد هرجوری بریم کلوب نهره. مگه دیمونه. خوب برای داروار بخر باز. اهرام. حواست باشه. دیویست رو بره. اشمون. چشمه خواست. سی و سه؟ آقا نمیشه باقششون. قول می نسریم. بعدی لواس بیارم. نه نمیشه. بشمون. سی و چار؟ ها چیه؟ چرا نمی خریباست؟ خب این دفترچه نمیدن؟ مگه دفترچه هم تو کی بد بود؟ دو نفری که دنبال مرتضا بودن به در مدرسه میرسن. میخوان بارد بشن که مسئولین مدرسه اجازه نمیدن. بعد از مدرسه. بفرمایید. بفرد کنم. یه دو ده دو <موقع> <نهن> <موقع> <نهن> وارچ زبرینت داد شلوغام میشم یکی دو ساعت ببینن نیستیم خاص میشم میرن با زنگ پیش رفتم بو نمیده خیلی یه داد بیا چیه؟ برایم، چی میدونی چی میگم میگیری چی میگی زندم نمیذارم پام از در بذارم میرون تیک تیکام میکنم از سگ وقترا اینو نمیگی زدی صورت یارور تر کنی تو رو که نمیشستم واقعا کارم نه واسه شنو برتقم تو برو کل خ نشه ست جون معدره صد دورداددا این جون مامان من رو اصلا نخواه اگه فهمیدین مرتزا دارو میخوام میان دام وسط جور کنم خوشید می الکی کتای بخوری بخورهواسه امشب جور میکنم من نمیدونم ولی جور میکنم من واسه امشب میخوام بدم میان لج میکنه مرتزا و مهران میخوان از مدرسه خارج بشن که اون دو نفر رو پشت نرده های مدرسه می بینن او, او. میکشونه مرتزاداریرووش چیکار کنم؟ بپیچورش، یا خیلی تو سرت کن، فقط بدون کلو نگی من بیش بابا منتظردم بینام برام بیا نه که من خوب بودو مرتزا یه دفعه پا به فرار میذاره و اون دو نفر با موتور دنبال شده به سمت کلوک میره تا کیف مرتضا رو برداره. مهران در کوچه پس کوچه ها میدوه تا به کلوب برسه مهران به کلوک میرسه و از پشت دیوار نگاهی میدوه و آروم آروم به سمت اونجا میره مرتزان نه مالی بری داری حسینا توی یه سر کلاس بغلم میشینم چی میگی تو بعد چی برو حرفم مف نزن کی دسته رو بده من سوس میکنه اینو چرا استاپ کردی بس من بازی کنه من با تو بازی نمی کنم دسته رو بده بهش بابا بزن استارت بازی کن میترسی میگم من با تو بازی نمی کنم داری شین داره فیلم بازی میکنه اونم اونوری که به مرتضی همشام چی میگی تو دور درو می داریوش آره مخ میزنه زهر میزنه ما خیلی وقت ما مرتضو کارم اصلا کی مرتضو چرا توی مدرسه دارد دو ره؟ ماجا مرا کم دارد خوردن دوشه مرا کم کی ریل قطع دو نفری که دنبال مرتزا بودن اونا گرفتن و در حال کتک زدن اونن. سه نفر از اهالی در حال جدا کردن اونا هستن بالاخره مرتزا رو از چنگشون در میارن و در حالی که خیلی آسیب دیده از زمین بلندش میکنن قبرستان. مزار پدر مرتزا. خیلی امید. خدا پیام خدا رحمت شو کن. این شلقه ما آخر تو باش. بس در مکنم. اوه او, او. چیکار کارت کردم؟ چی شد؟ شان سردی مهمور را آموده. سنو های کرا آقا؟ تو هم کتک زدن؟ ها زاده نشتی بخواه منو بزنم. دازد داشتم میزدن شو مهمور را بسم الله الرحمن الرحیم، احمد داره لاره بلالنه چی بخلی جوان مادر <تصوري> تو بده؟ الرحمن الرحیم ما رو تیامه دیم اگه که نبدو با اگه که نستنیم مرتزا یه پیرو. هرالیم بشا بیوتو من دیگه قیافاتو نمبینم بیا بیرون ببینم. بی بیرو بیرو؟ زلی سر. موهاش خونیه. گفتم دیرم صورتش خوبه. یه بار بیرون ببینم. بیرو بیرو بیرو. فردا من با خودت میبریم ببینم این کی بوده این بلار سر ادورده. پسرای وحشی نگو. اگه یه ذره عمرت رو بزاری کور میشدی. منم زلمش. میخود چردی زدی. بیجا چندی که زدی. دندون رو جگرت بزار خبر مرگ منو برات بیارم بعد در غلطی دلت خواست بکنی برو بکون. ناب ناب من همون صیاد هم مهنیمه. به جهنم که همسایه بفهمند. به درک همسایه بفهمند. تا اگه غیرت داشتی که, که نبیششی تن مادرت اینطوری بلرزه اینه بابت میمونی از زنیزم بشه همینطور روزه بچه هایی. من کاری ندارم بابا چجوری بود بزرن کتک میخورن مرتزا من اینطوری تربیتت کردم آره من اینطوری تربیتت کردم مرتزا، آب، علیم بد باری گرنه مادر، بیرون من نمیدونم منو رو چجوری تربیت کردی بزرن کتک میخورن مادر مرتزا در حالی که ناراحته لباس رو توی لباس شویه میریزه و بالای سر اون میشینه. مرتزا پشت لباس ها قایم شده و یه دفعه جلوی مادرش میپره و کادوی به اون میده. کادو همون کلاهگیسیه که توی بیمارستان پیدا کرده. ولیل مرده، بگیم آمان اینو بر ببینم، بگی دیگه حرف رزا، بگی مرتزا، بگیرم مرتزا، می دونی کار دارم گرفتنا این چیه؟ بسه من ندکیشیم داروات هم گذشان بکای بیدن آف دست در نکنم این درد نداریم؟ نه خی شما حد شهست داری بگیرم بازش خوشت بابا این دستکش دارم نمیتونم بیا اینه کجا گرفتی؟ بذار سر ببینم چطوری میشی دیگم اینه گرفتی؟ حالا بعدم بهت میگم، بذار بینم چطوری میشی نمیزارم بذار دیگه جون و اصلا بسم خب بذار خیلی خوب بیا خوبه؟ چه خوبشی هل برشته برشته الان همسایه میبینن زشته بعدم رفتی تو خونه بذار برشته خیلی خوب چه آدم شد حالا باس من برشته دیگه مو هم دوست داره. بی خیال مامان. بیا. بیا لا بآرن که زنت مثل من آرزو به دل نمونه بهت یاد بدم چطوری موی عروس خانومه ببافی. اونجوری بگی سه قسمتش خون سه قسمه. مامان. بابا mort نترسی دی. بابات... چرا؟ یادتی که چرا حالم بد بود و همه چی گیر می‌دادم یه دفعه تنها شدم، گفتم خدایا چی شد یه ها؟ فکرم خدا داره بام لج می‌کنه واقعا؟ من؟ آره چهلام بابت که تموم شد گفتم خدایا، ببخشید تو چیز خوب به من دادی دوتا بچه مثل دسته گل به من دادی نه آینده اینا چی میشه؟ اینا رو چی کار بعد دیگه برگشن به زندگیم در چند روز نگذاش که فهمیدم مریض شد <تصفيق> شاکی شدی باز؟ نه زیاد ببین مرتضا خدا دنیا رو اینجوری ساخته مثل همین بازی هاتون میمونن هر قولی رو که میکشی یه قول بزرگتر میان اما تو دیگه کم نمیاری چون قدرتت بیشتر شده حالا من میزارم رو سرد ببینم چرختی بیشی او نکن من بذارم ببینم از نه نکن بیا اینجا سرده این مرتز این زاهدی کیه؟ زاهدی م. زاهدی آها اه کی زاین زد چی گفت؟ کوبش زاین بزنی حالا کی هست؟ حالا بعدم میاد. صبح دفتر فیلم ساز صورت چی شده؟ دعوا جان. نویسنده ها بعید دعوا کنه. بالاخره شما آدمای فرهنگی جامعه ای ولی با این روحیت حتما تو سینما موفق میشی. آقای خیرतमंदان یادته؟ اون روز که اومدی اینجا نشسته بود، اتفاقی از طرحت خوشش اومد. البته خودش بخواد بنویسه و بسازه. این طرح رو جای دیگه که ندادی. نه. خوب کردی. خیلی تره رو ازت میدوزن، هیچ کاری هم ندارن بابتش بکنن. شما میخواین فیلمنامه منو بخرین؟ فیلمنامه که همین طرح دو سخطی تو چند؟ خودت بگو یه تو فکرات کردی؟ وقتی پول گرفتی، تحق دیگه ما رو ما هیچ جا نمیتونی بشینی، تعریفش کنی حالا آره چکار میکنی؟ پولو برای امروز میخوام برای دیگه چک میلیمسن، یه میلیون بلدی پاسش کنی؟ آره، آیه کاری داره. نه. 55000 هست که کسی نتونه برداشت کنه. یه قراردادام هست که باید امضا کنی. بعد کارت ملی یادت نره. داخل اتوبوس خط 1 مرتزا چک و قراردادش رو توی دستش گرفته و نگاهشون کنید. <تصفيق> <تصفيق> مرتضا چشمش به دختر همسایهشون میفته که آخر اتوبوس نشسته است. <تصفيق> <متحد> سلام سلام خوبی بدین میارم من خودم میارم بدین میارم زفتون رو در نشستم سر وند تو رو خوده تا نخور چای قهوه‌ام هست آخه فیلم فیلممه خرب بشه الان میرن به اسم خودشون فیلم ها میسازن مگه شما هنوزم فیلم میسازین آره دیگه گفتم که یه فیلمنامه داشتم 5 6 بار بهم زنگ زدن استور از اینکه ازم بخرن کارگردانم دیدی فیلمو شو کار یاردانه منم دیگه انقدر سیری شوت منم دادم بهش میگم یادتونه یه بار واسه فیلمتون خروج شله ملی خانم یواشکی برداشته بودین بعدش هم به پسرش علیرضا دعوتون شد شما میاریدتون آره آخه علیرضا یه جوری بود منم خیلی اذیت میکرد. واسه همین وقتی کچک میخورد خوشم بیومد. دادش شماد از ازمان گره و خورسر از تو فیلممون با انرژی بابای خوبشه. چه با مزده؟ ولی شانس نیم برد بازی بردن خوردن. <تصفح> <تصفح> <تصفح> راسی این گل سر تو افقده بودن در خونتون بردشم بردم بردن. درست یارم. <تصفح> خیلی ممنون زمان کسی و از شما دیگه برین خونه دیگه ما اونمنده منتظرتونه بفهمید آها بفارین داخل چاک هایت ده ستون داشت آقا مرتضی قرارداداتون آها خیلی ممنونم خدا خدا اهبال آقا, آقا مرتضی خونساز ساعت بر تو زمین است اوسه اور کارت ملی منو بیا دور مینا رو وردی تر زدی توش سلاط در نمیاد بولیشونیدا. ايه خیلی خوب بده. کرایه‌اش با تعمیرش بده دیگه. الان چه ندارم واسه دو سه روز دیگه بده. زر نزن من میرم این ننت میگیرم. اوه، سمد یه قواش ساما. سمد خلاص میگه. من گفتم کریم اون قاطیه نگفتم؟ سمد یالا قواشا میگم به خدا من. شو خفش شو. قرآن بدین سمد دیگه. میگم بهت میدم خب. سمد تو پول در تو قرآن میذارم یکی دستم بشکرم. قرآن شو. که نقدش کنم بهت میدم. الان که نرفت شوند نمی دیدم. الان نه. اشکون. دنبینه. دست دیگه ول. دستم چیکار؟ اشکون. اشکون. آه سامان دستم چیکار می‌کنم؟ یه نگاه باشی سامان. سامان دوست. اون چه که مالو سامان. سامان. سامان. که سامان کنی. پول منو با دوربین سالم و با دیگه یه چکه تمیگری شوید میدم. شوید مرتزا مادر نگاهی به بالا میندازه و دختر همسایهشونو رو می‌بینه که داره از پنجره اونو تماشا میکنه. مدرسه مرتزا مرتضی و مهران در حال راضی کردن همکلاسیشون هستند تا مثل دفعه قبل بازم ترمز استراری قطار رو بکشه تا قطار بیسته. خول شدین؟ واسه تو فرقی نمی‌کنه این فرق میکنه واسه ما که بیرونی فرق تو که اتوکارتونی گفتی این دفعه می‌گیرنمو می‌دونی هی بابا من چیکار میکنه از کجا بفهمه صد آدم میخوای بیاری سری قبل گفتم گوشی و از قطار افتاد این سری چی میگم اینا آدم میتونی قایم کنی بنا گردن من برو بابا من کشیدم چه جوری تو ها این من خیلی نامردی چیه ترسیدی؟ نه پس اگر ترسیدی فرد پنج از حد اقل صد دفر برم بیار کنر روی بیشگه بچه مرسو باورش نمیشه که این باید خرکلی سمی پول بدن مرتزا چیه تو میتونی نوید رازی کنی؟ یه اگر سوگانی پس باقیش با مهران به سمت مدرسه برمیگرده تا با بچه ها صحبت کنه شب، مهران و مرتزا رفتن دم خونه همکلاسی‌شون سینا کیه؟ سینا هست؟ می‌شه تو تو کنیدیر داری تو باست چیمه کلو کی تو را داد گفت تو حیاتی یه چی بگم میرم نه بابا ما صدا میکنم گوش کن سینا مان مردزه مریضه پول لازمه مادی اینجا پول قرض بگیری؟ نه میخوایم دوار قطار نگه داری خب به من چه؟ حداقل صد تا بچه های مرسر میخوایم ولی کسی به آورش نمیشه خب که چی؟ سینا اون فیلمو رو دقیق خوب اون روز پاکش نکردم. علی گفتن سراج بی خیالش خالی نبند من سب بلند پاکش کنم با اون فیلم همه بچه ها رازی میشه سینا باز چی اومدی اینجا موبایلو که دیدی جلو خواهد ازم گرفت برموز شو بزن نامردی نکم بر بیرون اخونمون سینا دعوامو و سر جاش مادرشه چرا خودش نیمون اینجا؟ تلافی میکنم <تصفيق> پدر و مادر سینا با هم دعواشون شده پدر سینا به حیات میاد و سیگار میکشه پدر سینا از حیات بیرون میره و چشمش به مرتزا میفته که داخل کوچه ایستاده چند روز پیش مرتزا تیه کارواش از داخل ماشینش یه انگشتر طلا پیدا کرد و بهش داد. ببخش مهران و مرتزا دوان دوان از اونجا دور میشن مدرسه سینا گوشیش رو بالا گرفته و فیلم نگه داشتنه قطار رو نشون همه بچه ها ای بزا ببینید دیگه دوتر سینا مایی کنید هرچی میخواد ببینه برای از پس میشون ای بزا برد نیم کنه افرید شما خیلی آما خوش وقت هستین که داریم اسم میسی برو مینو میسا تو چه بار دیدی؟ ک با دوبال میخوام ببینم باشه برو تصف مینو باشه زود برین زود بیان برین سرج نمین بدا بوددو کوز گس تو مینوسا برو باشه می نوم هرکی دیر بیاد پولش برید چیزی هم نمی بینن از توش که من بعدلتتون عروسهیهلو بیا جلو زود بیا پلتتون رو بده؟ I don't know what to do, I don't know what to do. I'm not sure what to do. Sir, sir, I don't want to go to the river. What's your name? Sir, I want to go to the river. I want to go to تا اونجا آب کشه، پس بعدش بریم گوغ بگیریم نه الان میخوام گوغ بگیرم، ما ها فردا میخوام بریم از باشه، پس فردا بران بگیریم تو آخرسته ما رو لومی مرتزا، با مامان ماما نبو بسته این که یه های درش میخواد محسن. هم ما های ماما گلتی چه بولن بو. بود؟ نرمان نیدی بود. نیدیه چرا ماممونه داره؟ برای هوا جایم بود مرسزه داره. کی گفت اینم؟ خودم مامان ها چرا پرسال گرمود نمیزه؟ نمیدیه. مامم به دروگ گفت. مامان که دروغ نمیگه؟ چرا این سری مامم به دروگ گفت. مامان مریز برای همونه داره. ابرو هم نداره با دست صبرون میکش. دست بزنی معلومه. شاه که منو تو خوابی همش گریه از بس درد. ماما مریضه؟ خیلی وقته ولی الان حالش خیلی. چقدر؟ زیاد تا حالا فکر کردی وقتی مامان نباشه خونه زندگیمون چجوریه؟ نه مامانی نه بابایی؟ فقط منو تو این منو تو الان مرد خونه نمیشه که ب خیال چی؟ چفا کنی؟ با هرچی میان بگی چش. چش <تصفيق> صبح روزه بعد مرتضا برادرش محسنو به راه آهن میبره. تا داخل قطار به فرسته برای اینکه زمان رسیدن قطار به اون و بچه های مدرسه ترمز اضرائی رو بکشه تا قطار بیست دوسته نمی چرا؟ ای نداره اگه ازت پررسن ما اون باد چی میگی؟ ترذرم اینجا تکتاو چیکار می کنی؟ می هم بودم گ شده و درم برمیگردم خانم یه بیتطقلاصلا خوام بدین خونه داداشم بودم دیر شده و من رسور آهن کار در جور رتون را الانمند گیجوازی دارن یاریا حواست باشه حواسم هست من برم میشه تو هم ماما بیای نه دادا اون کاری که باید گفتم هر با. موقعم قطار اومد برو بیلتتو بده با اون آقا سوارشو بیا ساعت بار گفتم گیجوازی دارن یاریا باش فقط دربی دیر نشه دربی هم میری الان اصلا دربی مهمتره یا مامان مامان خلاص بریم آقا مهمتره دیگه الان فقط به مامان فکر کن نازرابالی دیدی چند تا بیا اینا ببینید. می محسن رو میذاره و میره. بچه های مدرسه در حال رد شدن از مزرعی زورت هستند تا به کنار ریل قطار درستند. کش با نزد! با ساکت باش! ساکت باش! کیم کی بار کردی؟ مبارک جمع کردی. دیش نداره؟ اینایی ای هم که دارن میفته. بهران. چی؟ مرتضی چطوری گذارنی رو داره؟ یه جام فکری میفند. آب نه ساکت باش! خالی ونده. خالی ونده؟ فکر فیلمه؟ که چیست؟ گوش به من. میدونی عل قرار چه اتفاقی میفته؟ سری دیش شد. بعد گره. توری بارون می آمد که چش چشو نمیدیم سگا جیغ میکشینم کل آقا پاش میکردم ساکت باش، برد <تصفح> تو زمین تو مدرسه میبینم دارم برات ایستگاه قطار محسن برادر مرتزا در حال رفتن به سمت قطاره تا سوار بشه که مأمور قطار جلوی اونو میگی با که اومدیم؟ عشقه، یه لحظه تنهایی؟ که نمیشه برین جایسی ببینم اینه بگی بفرمایید شما هم سوار شید بفرمایید. معمور قطار داره محسن رو با خودش میبره که تعدادی مسافر از راه میرسن و حوااسش رو پرت میکنه. محسن از فرصت استفاده میکنه و سوار قطار میشه. می‌داریم ببینم بلیط بده. سلام تأخیر کنار ریل قطار. پرتو زاینه حرف گوش نمی‌نه. سینا چوردنار خرطو خر شده. برگرد نگاه کن. از اولم معلوم بود با این همه لو میره سینه ناری به بچه لو بوده نه بابا داره یه حالی میکن تو تیم مونو تا از پنجا خودش گذاشته کلا چقدر جمع شده؟ نهش مونو، زیاده یا، اگه من دیر افتاده هم برد اماله پول مامانه پولم آمانه پولار هم یجا هر اتفاقه افتاد با این هسته خودت چلون نمیگیری؟ من برم دنبال موسیم، نمیدن چی میشه قطار. محسن وارد یک کوپه میشه و میشینه. سلام. سلام. بفرمایید. ماشاالله. هزار چه پسر نازیه اسمش چی؟ محسن. کلاس چندمی؟ توهم. ماشاالله. بذار از این موزه بهت بدم بخور. میشه جونت. نگاه محسن به ترمز استراری قطاره. مامان بابا. خورجم خوبه بقیلی پس اومدی اینجا؟ جان نبود جان بله بله بیش بله بله گوشی دست روی یه دقیق تو هم با کپا با آمدهش یه دقیق گوشی دست بود قطار. مرتزا در حالی که بسیار مستربه منتظر رسیدن قطاره داخل قطار محسن بلند میشه و داخل راه روی قطار میاد و بیرون رو نگاه میکنه حواست در دا دالگ برونه خوب باشه باشه به زیدیم زیدیم عزیزه آقا که بگه تم سنی در آمار. ها خوب به بعدن زنگ دم خدا حافظه آماده کنار ریل قطار مرتزا از ماشین قدیمی بیرون میاد و به سمت ریل قطار میره و روی سنگ کنار ریل میسته کنار ریل قطار مرتزا همچنان منتظر رسیدن قطاره بشینید، ساکید باشین، بشینید لو میریم بشین داخل قطار من همسن تو که بودن سه بار تنهایی رفتم تهران رو پرگشتم تهران جای خطرناکی. به خصوص برای یک توی سنو سال تو که در مادر آدم هر چقدر که بد باشن از این معتاده ها و و خلافگار که بهترن نیست داخل قطار محسن داره به حرف های مرتزا فکر میکنه محسن مزرعه بلالی که دیدی شروع کن آروم عجله کن نلفتش بدن منم لب ریلم فرستادی کنار محسن داخل کوپه میره و به ترمز استراری قطار خیره میشه محسن با ترس زیاد و افراد داخل کوپه نگاه میکنه محسن به ترمز نگاه میکنه و شروع به فرستادن صلوات میکنه کنار ریل قطار مرتضاب به شدت تمرکز کرده داخل قطار محسن روی سندلی میپره و به سمت ترمز میره و دسته اونو میگیره کجا میری بچه یه پایین کار میکنی نکن نکن این کار سن میخواد بچه کیه بچه دیگه otşu gripdim تو gözü هر söbük elleşko elleşko metni به diğer bağ yaştasız dü هیچ her şey durduri bajjam be بس اگه میخوای ماما خوب شه، هر جوری ترموزو بکشیم محسن در حالی که گریه میکنه به شدت دسته ترموزو گرفته گوشمینی محسن اگه میخوای مامان زنده ممونه هر جوری باید ترموزو بکشی. تا رد میشه و مرتزا نتونسته اونو نگه داره به همین خاطر بچه های مدرسه عصبانی میشن و پولشونو میخوان مارتزا از سنگ پایین به سمت ماشین قدیمی میره تا وسایلش رو برداره و سریع اونجا رو ترک کنه. بچه های مدرسه به سمت مهران حمله می کنن. مهران پولا رو می و فرار می کنه. سینا بخت زده نظاره گره. منزل مرتزا. مادر مرتزا در حال خروجه که پدر سینا اونو صدا می کنه. خانم ببخشید آج خانم بله ببخشید منزل آقا مرتضی اینجا. سلام بله. بله اینجا. شما مادرش هستین؟ حال مادر شما خوبه؟ بله چی شده؟ نه من رفتم کارواش گفتن از کارواش رفتادوش مردن. از کارواش رفته؟ نمی‌دونم من این... گفتم بیام خونه آقا شما شدم ببخشید. اینو لطف میکنین، از قول من بدین به آقا مرتضی. چی هست این؟, این یه هدیه آقا بش بهش بدین خودش میدونه. فقط بی زحمت بگین که بابای سینا اینو ببر من بابای سینا هستم. من میگم بابای سینا. ببخشید، موظن شدن. به سلامت. خداحافظ. رضا دوان دون خودش رو به دفتر راه آهن میرسونه تا پیش برادرش محسن بده. سوشا توی این ضربه این سر چقدر خوب گرفت به فروزان. طرف فروزان نجات میده. این تکرار مگه من خوش تلفن به مادر نگفتم فقط باید پدر یا مادر بیاد. اون وقت چطور اومدی؟ من داداش بزرگترشم. چه فرقی می‌کنه؟ هرش بزرگترش نزار تنها بره تو خطر هر کاری دلش می‌خواد بکنه. الانم بشین تا مادت بیار بشین ببینم. این تو بیاد. اون یه درو دیگه زامی بالای گاته تیره دروازه. حالا یه قاتی کرده. نمیشه شما ببخشیش. یاد درسو. جانم. الو. مخلصم.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 بابا مادا مسه بودو، بودو بیرونم نمیاد یا. منزل مرتضا. مرتضا کلنگ رو بر می داره به سمت موتور میره تا قفل اونو بشکنه. مرتضا قفل موتور رو میشکنه و اونو بیرون میبره. محسن بسته ای رو که پدر سینا آورده پیدا می‌کنه و بهش نگاهی می‌اندازه. مرتضی موتور رو پیش سمت کارگر کارواش که دوربین رو ازش گرفته می‌بره. سن داره؟ اسم پدرش چی بود؟ کریم. بله اون کریم اردوش بود. اینجوری با این وضعیت این اینو چقدر برمی‌دارن؟ هر چقدر. من که پول ندارم بذارم. اون چک که هست دیگه نمی‌تونی نقضش برایش چه که همون ودیگه؟ ما آن هت میدونه. چطوری؟ سوییچی؟ یه دکوان مرد بیاره. با یکی داره دیدی که سوییچشون عجیبم، بعضیان داره خونه تو نه. مرتضو چه که پس میگیره، نهش میکنه و به دارو خونه میره تا داروی مادرش رو لگیره. بفرم خیلی ممنونم خانوم پناهی منم آقا آقای حسین این دوری خانوم پناهی نشان محبه آقا بفرم این آنپولا زمانشون مهمه نوبت بعدی رو به موقع بزنید نوبت بعدی؟ بله بیس و یک جوز یک بار اینها باید تکرار بشه یعنی چی دکتر؟ یعنی هر سه هفته یک بار این پول باید بفنید. خانوم قبادی. خانم قبادی. بعدی مرتزا که فکر می همین پول برای درمان مادرش کافیه بسیار ناراحت میشه و خونه رو ترک می‌کنه. <تصفح> مرتزا داره به سمت خونه برمیگرده و حین برگشت از جلوی کلوپی که تعطیل شده رد میشه و بعد به ریل قطار پاتوق همیشگیشون میرسه روی کاپوت ماشین قدیمی میشینه و به جلو زل میزنه و فکر میکنه بلند میشه و روی ریل قطار میره به مسیر ریل قطار زل زده و مادرش رو روی ویلچر به همراه برادرش تصور میکنه هوا گرفته است و داره بارون میباره پرنده ها گروهی دارن پرواز میکنن و قطار داره نزدیک میشه. مرتزا چشماش رو میبنده. مرتضی همونطور که چشماش رو بسته، دستاش رو جلو میاره و میخواد قطار رو نگه داره. قطار جلوی پای مرتزا می میسته و مرتضی به اون نگاه میکنه. پایان فیلم 21 روز بعد نویسنده و گوینده سید داوود موسوی میکس و ویرایش افسانه صادقی صدابردار، افسانه صادقی تهیه کننده سایت صدای فیلم. کارگردان محمد رضا خردمندانی تهیه کننده محمد رضا شفاه. بازیگران ساره بیات مهدی قربانی حسین شریفی راستین عزیزپور امیر حسین صدیق سینا رازانی علی استادی جلال فاطمی و حمید رزا آزرنگ صدا بردار امیر نوبخت